ای روخت چون خلد و لعلت سرسبیل سرسبیلت جرد جان و دل سبیل سعوز فوشان خطت بر گرد لب همچون مورانند گرد سرسبیل ناوک چشم تو در هر گوشه همچون من افتاده دارد صد قطیل یاربین آتش که در جان من است سرد کن زنسان که کردی بر خلیل من نمی نمیابم مجالی دوستان گرچه دارد او جمالی بس جمیل پای ما لنگست و منزل بست راست دست ما کوتاه و خرما بر نخیل حافظ از سرپنجه اشک نگار همچون مور افتاده شد در پای پیل شاخ آلم را بغا و عز و ناز باد و هر چیزی که باشد زین قبیل